خو هر چه گفتنش شروع نیست به رختی بابد کش برابوی نیست. تو بهتر سراوت سخن سخته به زه گفتار بد کام پرداخت به. سلام خداوند جان و خیرد که این برتر اندیشه بر سلام هست که میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه که میشنوید پنجره های به محتاب هست من همیت رضا هدایتی راد هستم و مثل هر یک شمب شب قصداد خیلیدون جنیدی در صدیه برنامه هستند سلام علیکم شب شما بخیر شما شاد باشید شاد زیبید انشالله همه و از میکنم خدمتشون یه مطلب میخواستم بیام یه دفعه یادم افتاد اونجا با هم دیگه صحبتی که حال و هوای الان خیلی حال و هوای خوبی حال و هوای ایده نوروز در بین مردم این جنب و جوش بله این دیگه فرمان یزدانه که گل و خار و برگ و درخت و جانوران و موش و طاو و دد و پرندگان و همه به جنب و جوش اومدن و این در حقیقت دانایی و بینایی یا کان ما رو میرسونه که زمانی رو برای سال و گشت سال انتخاب کردن که همه جان جهان به جوش خروش خلاف یک اد اروپایی که نیمه شب سرد یک زمستون رو که تازه در سالم تغییرم پیدا میکنه آغاز سال گرفتن البته جهان داره بیدار میشه داره بیدار میشه و من فکر می‌کنم که شب نوروز درباره نوروز سخن بگم میره امید خدا. حالا اون چیزی که شما فرمودید امروز هم روز درختکاری و هفته درختکاری بود. اهمیتی که درخت گیاه نزد ایرانیان داشته. استاد ولی خب ایرانیان برای درخت برای همه جان جهان ستایش خورده بودند. ما درختو جان دار میدونستن و به هیچ روی بریدن اون رو جایز نمیدونستن مگر اینکه درخت از سوت سانی افتاده باشه اینی موقعش باشه که دیگه میوه نده و اون زمان اونو بورید. اون رو باید برید نه در تابستون ندر بحار برکه باید در زمستون باید که خوش باشه و پیشتر از اون که این رو بورن باید یک درخت سه درخت تا یک درخت بکارن تا اینکه اونها بگیره بعدن این درخت بریده بشه بله و. بعد این احترام به جان جهان در نزد ایرانیان بوده و برای درختان گیاهان خیلی جایگاه و ارزش آیل بودند و ما هم باید به دنبال نیا کانومون بریم در شاهنامه فردوسی هم اشاره زیاد شده به گیاه و درخت البته در شاهنامه و همه چیز اشاره شده در درخت و گیاه درخت همین امروز من بیتی خوندم که از درخت سوار بکرد میگهت سخون هست گفتنش رول نیست درختی باید کش برو بوی نیست چون درخت باید یا بر داشته باشه یعنی میوه یا بوی داشته باشه یعنی گل درختی که نه گل داشته باشه نه میوه داشته باشه این مثل اون سخنیه که نباید گفت چون احتر سخون سخته به سخته یعنی سنجیده چون گفتار بعد کام پردخته به یعنی کام و زبان انسان خوش میشه از گفتار بعد به گفتار خوب ما زبانمون رو بیاریم با با نیک روانمون رو بیاراییم خب ما امشب با استاد جنیدی درباره شاهنامه خردوسی صحبت می‌کنیم مثل هر یک شنب شب شب از شاهنامه برای ما می‌خوانند و ادامه داستان که خسرو و نبرده او با افراسیاب رویی چند هستش استاد رویه ی رویه 213 یعنی همین صفحه ی و جلد دفتر سوم دفتر سوم و برنامه دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و و شما دید پیامک سی و و هشت. سی هزار و و هشت. شما از طریق این دو تلفن و این پیامک میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید پیامونه موضوع شاهنامه و موضوعی که حالا قصهی که داستانی که به سند داستانی که آقای دکتر برای ما میخوانند در شاهنامه و میتونید پایگاه اطلاع سانی ما هست میتونید از اون طریق هم با شبکه فرهنگ سپید برقرار کنید پایگاه اطلاعاتی ما wwwdwcom radio فرهنگ das ir هست. و عزیزانی که اقوامشون دوستانشون خارج از کشور هستن فارسی زبان رو میشناسن که اونو علاقمند هستن به فرهنگ و ادب فارسی بفرمایید که از طریق موقعی هاتبرد اون بخشی که رادیو هست پیدا بکنن رادیو فرهنگ رو و از این طریق بر های رادیو فرهنگ رو بشنبند برنامه ميه. ما رو هم بشنبند پس موسیقی میشنیم و با شما میشنویم داستان که خسرو با افلاسی <متصفح> داشته باشید پیام پا، یعنی سیاب برای که کسرو پیام برستاد و پاسخ بسیار سختی شنید که سخون هرچی گفتن نیا را بگوی که در جنگ چندین بحانه مجروی بیاری گرزان دنبال این داستان رو میکنیم سپه را همه هرچی بایی ساز بکرد و بیامد برای دیج پراز یکی کنده زیر باره در اون بکند و نهادن زیرش دوتون کنده برای قطعا همون در زبان پهلای کندک بوده این جایی که میکنند زمین بعد این به زبان عربی معرب شد به صورت خندق بر اومد امروز ما خنده رو خندق رو بهتر میشناسیم از کنده که کندک به فارسی برگشت رو شد کنده اما در زبان کردی هنوز یه واجهی داریم که کندال میگن کندال یعنی جایی که در رودخونه آب زمین رو بریده باشه کنده باشه و رفته باشه و بعد نیست که من بیفتیم که واجه کانال گروپایی هم از همین دیرکت شده از کنده شدن یکی کندهی زیر بارد درون بکند و نهادن زیرش ستون در همه نصف آمده به زیرن درون آتش و نفت و چوب من فکر میکنم که به کنده درون درسته. به کند در اون آتش و نخت و چوب زبر گودالی که کندن بله زبر گرزهای گران بازم در تمام اه... نمون آماده کوب کوب من پیشینو بگم باره کوب اه... اگر بیوتو شیتار در فکر اه... هفته گذشته بود که اه... کسانی که از نیرن... نیرنگ باره خبر داشتن آگاهی داشتن اینها رو هم نیرنگ جنگ و حصار بیاد داشته باشید از اینها استفاده کرده من گفتم بعدن دید. ببینید که اینجا داره از اونا استفاده میبره یعنی ساختن اون کنده و بعد اینکه چوب بذارن این نبرد پیشتر از چارزارد ویست پیش رو روی اون مبدع تاریخی که ما داریم و با سنجش در حقیقت دورهای زمین شناسی معاین میشه در کتاب داستان ایرانیان رو دقیق من عوردم این, این نبر پیشتر از 4,20 سال پیش انجام میگیره و میبینید که سخن از نفت اینجا هست یعنی ایرانیان نفت رو میشناختن البته ما در دهلوران یک حسیری پیدا کردیم متعلق به 8,000 سال پیش که اون حسیر رو با غیر اندود کرده بودن یعنی ما قیر رو هشت هزار سال پیش می شناختیم. و اینجا از نفت داره سخن میکنم و از پیرامون سی مشتقه که از نفت پیدا میشه شود از اینها در زمان حقامانشان شناخته می شده. یکی از اینها قابلت اشتعالی داشته نزدیک به همین بنزین هواپه مای امروزی اینها خیلی مهمه که ما بدانیم یک اوکرامون در چه سمانهای این از این بسیله ها استفاده می و چه دانشی داشتند در حصد این نبرد زودتر از چهارزارد و سال پیش تو اطفاق افتاده که از نفرازش نام برده میشه و زبر گرزهای گران کوب کوب گفتن همه که من پیشنام می کنم باره کوب باشه گرز باره کوب یعنی گرز در حقیقت یک چرخ بوده دو چرخه که بعدن این اکسل وسط این دوتوچرخ یا پیوند وسط دوتوچرخ یک تیرهای بلند نسل میکردن و یک سری این تیرها یکی در تقرید کیسه یا حالا یک جایگاه چوبین و هر ترتیب پرسنگ این وقتی که این سنگ ها رو با, با کمک احرام و انسان میبوردن بالا بعد وقت وقتی یه بار راه ها این سنگ به شدت میافتاد پایین اون طرف تیر بلند میشد به شدت میمد به طرف ها با. اون طرف تیر محفظه گذاشته بودن که سنگ های و بزرگ توش شد توازه کردی این این احرام بود میچرخی اونو میچرخونه از اون بالا اون سنگ ها رو پرد میکنن مثل غلاب سنگ مثل... غلاب سنگ های هم هست اینجوری میگیرن پرد میکنن بچه ها تو بازی هاشون حالا ما آه... نه اونطور نیست اون که غلاب سنگی با اه... پریسون درست میشه و اه... نه این, این, ابزار این درست جای... احرامه یه احرامی که یک طرفش بزنه داره یک طرفش سنگی که اون سنگ ها بشه توی و این یعنی این ساختن چنین وسیله جنگی که از نیروی در حقیقت اهرم استفاده کنم باز این با اینجا یک پیشینه 4000 مثلا 6 8 ساله داره. و این مربوط به یونان نیست. که فکر می‌کنن که یک یونانی این اهرم رو درست کرده. و بعد گفته که یک نقطه اتکاب من خارج از زمین بدیم تا من به وسیله اهرم زمین رو تکون بدم این تقریبا حدود 2000 سال پیشتر از وجود 1500 سال پیشتر از به وجود اومدن یونان ما می‌بینیم که اهرم وجود داشت و این استفاده را ازش می‌کردند به کنده درون آتش و نفت و چوب زبر های گران بارکوب همه باره گفتی که برداشت پای گفتی که من بارها گفتم که پردوسی به, به خاننده گفتی نمیگه این پیشنهاد اینه که همه باره یک باره برداشت پای اینی فرو ریخت هم از پایین از زیر دیوارها آتش گرفت و فرو میریخت هم از بالا گرزهای بارکوب اینا دیوار فرو ریخت چیکار می کنم کلامتون بسجونید. الان که داشتید میخوندید یک ولگردی تذکری شعر زادت کردید. بله اینا همه از نظر وزن اون شعر قبلی قافیه با این شعر چقدر همگونه. یکی هم سازه. کم کم شما متوجه میشینه. حالا این که یه صفحه بود بعضی وقتا از که 5 6 صفحه، 8 صفحه بعضی میبینی که اون بیتی که پیشتر خوندم درست پیوند پیدا میکنه به بیتی که این همه اینا همینه. کاری که شد بیاری از اون بیاری روان فردوسی برای یاری یواری ها همواره فرزنده روان شده، این که این کار انجام شد وقتی خواننده اینا رو بخونه می‌بینه سخند هم پیغسته است و پیوسته نیست خب حالا این ببینید الان تقنی یک صفحه باز با بیت پسین فاصله داره که بیاته افراد اومده همه باره یک باره برداشت پای به کردار و در آمد جای. به پیروزی شاه ایران سپاه بر آمد خروشیدن از رعزگاه. باره افتاد و مردم خروشیدن. تمام اون عبیات است. همه شهر توران گریزان چو باد. نه یا آمد کسی را بر بوم یاد. به ایوان بر آمد پس افراسیا پر از خون دل از درد و دیده پراب بدان باره بر شد که بود کاخ بیا اومد سوی شارسان کرد روی. در ایش باستانی یک بر حقیقت ساختمونی داشتن که رسلات با بالایی کاخ بوده و بعد یک دیوار این کاخ اگر شما ارگبم رفته باشید پیشه شد دیران شده هم میدونم بالایی کاخ بود و یک دیوار دوران بود این ارگپد بود. یعنی دیوار دور ارگ بود که جایگاه پادشوی یا فرمان رو بود. که این اکفت رو معرب کردن گفتن ربز یعنی با, زا... با سازاد ربز نگفت نه... نه داشتن نپی داشتن ا... بعدم اگر همینطور میخواستن با پنج با که اینو برگردن به عربی بحری پیدا نمی کرد به طور کلی و هم ریختن کردن ربز بعد از این اکفت شارسان بود که جای بود که مردم عمومی شهر درش بودن و بعد باز دیوار بزرگ خود همه این شهر بود و بیرون از دیوار که جای با کشابازان و کسب و اینها بوده این ترتیب ساختمان شهر بوده. به ایوان برای آمد پس اون پر از خون دل از درد و دیده پراب به دان بر شد که بودکاخ اوی بیامد سوی شارسان کرد روی. افراسی ها چنان دید کار چنان حول برگشتن روزگار پر از درد از آن بارا آمد فرود همی تخت مهی را درود فراوان بجستند و جایی نشان نیامد ز سالار گردن کشان زگر و جهن پرسید شاه کار سپهدار توران سپاه که چون رفت با رامگاهش کجاست نهان گشته پناهش کجاست؟ زهرگونه گفتند و خسرو شنید نیامد همین روشنایی پدید. به ایرانیان گفت پیروز شاه که دشمن که آوار گرد از دگاه زگیتی برو نام و کام اندکیست. یعنی دیگه کامروانه خود بود و نامشم به جودی فراموش خواهد شد. و را مرک با زندگانی یکیست. نباید که بر کاخ افراسیاب به تابت چرخ بلند آفتاب. یعنی این کاخ رو بیران نکنید. که اگر ویران بیشه از چرخ بازم آفتاب میتابه به کاخ دیگه به توی اتاقا و اینها ویران نکنید کاخ هم رسول همه آواز پوشیدین رویان اوی نخواهم که آید از ایوان به کوی یعنی اگر در یه جنگی خب مردم بریزن به کاخ که در شبستان بارد بشن دست زنها و دخترها رو بگیرن خب اونا مسلمان این که فریاد و فقان خواهد کشید اینجا که من آواز اینا از کاخت و کوی بیاد یعنی باید اینا آرابش داشته شده چود دیدند کردار اوی سفه شد سراسر پرد گفت و که که خصوی در به شده است که گویی سوی باب مهمان شده باب یعنی پدر بزرگ یا به مهمانی اومده همی یاد نای اچخون پدر بزیده به خنجر به بیداد سر همان مادرش را که از تخت و گاهز پرده کشیدند یک صوبه شبان پروریدست و از گوسفند مزیده از شیر این شهر خوش چرا چون پلنگان به چنگار تیز نه از خان او رست خیز. زیگفتار ایرانیان پس خبر به که آمد همه در به در, در یعنی بخش یعنی فصل یعنی باب در به در یعنی بخش به بخش هر چی گفتوزن خبر رسید. چون که پادشوان همیشه اشفاست داشتن که اخبار رو بشنمند به پادشوان برسون. فرستاد کس بخردان را بخوند بسی داستان پیشی ایشون بران که هر جای تندی نباید نمود. سر بیخرد را نشایت ستود. همون به که با کینه داد آوریم. به کاماندرون نام یاد آوریم. موقعی که به کام رسیدیم و نام برای ما مهم باشه ننگ نباشید. نام بیاد نام باشیم که میکیشت اندر جهان یادگار نماند به کس جاودان روزگار. از آن پس بفرمود فرمود شاه جهان که آرند پوشیدگان را رو نهان روی پوشیدگان افراسیاب را پنهان از مردم بیران بوزورید. از ایوان بزاری برآمد خروش که شاه به بیداد چندین نکوش همه پاک پیوسته خسرویم جز از نام او در جهان نشنبیم پیوسته این یعنی قومخش امروز بگیم قومخش به بعد کردن جادو افراسیاب نگیرد بر این بیگناه هم شتاب چون این گفت که خسرو حقشمند که هر چیز کن نیست ما را پسند نیاریم کس را همان بد به روی او و بر چند باشد جوان کی جوی به دیشان چونین گفت کیمن شوید ز گوگنده گفتار بد مشنوید به ایرانیان گفت پیروز وقت یعنی وقت پیروز ما به ما داد بوم و برو تاج و تخت ز خون ریختن دست باید کشید سر بیگناهان نباید برید نه, نه مردی باید خیر آشوفتن وزیر اندر آقا و, و بردر آقا کفتن این, ها آین های پهلوانی دی. این در کشتی پهلوانی وقتی یک نفر میخور زمین دیگه اجازه ندارن بیشتر به شتاب ببرزن خلاف کشتی های امروز که بعد پشتشو بخواست بماله و بعد وقتی که تموم شد دست اینه بگیرن بالا دست اون رو بگیرن سرفکنده پرین باشه پهلوانان کشتی میگرفتن همی که زانوشون دخورد به زمین دیگه به هم دیگه شتاب نورد این حتما باید روی پام نیست دارد یه آنو میخورد بود نمیذاشتن این تو رو هم بقلتن کشت هم بگرم حالا کشتی ما که باز همش آین پهلوانیه این کشتی هایی که از ژاپن و شرقاسی هم تمام با لگد و دست و موشت و اینا مثلا این بکس واقعا این چه کشتیه این یه مدتی تحریم شده بود باز رو مفت بگردتن واقعا اینها نمیشه اینا رو گفت ورزش اگر هست واقعا ورزش پهلبانی زورخانه یه من چون بزرگخانه بزرگ شدم میدونم یعنی بدترین انسان ها وقتی میره تو گود پاک میشه یعنی تو گود زورخانه جایی برای ناپاکی و اندیشه بد نمیمونه و خب متاسبانه ورزش زورخانه ما داره پایمال میشه با این ورزش های نو در آمده ما همش کوشش نمی کنیم که این رو جهانی بکنیم گویی مثل که بله اتفاقات بله بله دارن انجام میدن مسابقات مختلف دارن انجام میدن مسابقات قهرمانی مسابقات زوخانی در این پایگذاری شده شما خیلی علاقه مندی دارید خب این ورزش ایرانیانه این ورزش 6000 سال پیشینه داره این از زمان کیش میر و فریدون فیروزی فريدونه ما با این ورزش ورز هاک فیروز شدیم شیش هزار سال بر جان و رمان و ما گذشته خب این بر... باید باید بدونیم باید احترام بذاریم باید دوست رو داریم این رو با هر چیز دیگه هم خوب آقا دکتر من مثلا سوارکاری خیلی هم متعلق به ما شنا, شنا خیلی خوبه اما بوکس زدن تو سر روی هم دیگه آه درست نیست با زدن بر. تو سر مردم و اینا, اینا. چه ارزشی فوتبال هم دوست دارم من فوتبال از چوگان ما گرفته شده فوتبال از چوگان ما گرفته شده منتها اونجا این چیز رو در حقیقت رو با چوگان میزد با در این دستایی که چوگان میزدیم حالا این گوز رو با پا میزنن در اروپا یعنی پیادهش کردن و این من همینجا بی افساییم که امروز برزیل بیشترین بهترین جایی است که چوبان بازی میکنن یعنی دست ما که در رف داریم الان چند تا باشگاه هنوز داریم سال کردن داریم که چوب ولی اون اندازه نیست برزیل بهترین جویس که چوگان بازی میشه وقتی اینا پیشنهاد کردن به کمیته المپیک که چوبون رو بیارید به جزء بازی‌های المپیک می‌ذارید یونان سر شما شما میخواید ورزش دشمنان ما رو بیارید تو المپیک اومدن، زدن ریختن کتابخونه‌ها ما رو سوزوندن، دانشمندان ما رو کشتن که تمام شهرهای ما رو ویران کردن، یه ویرانه به جا گذاشتن، رفتن، هنوزم باز ما دشمن اون‌ها هستیم که ورزش ما نباید بیاد به المپیک ما دشمن ما دوشمنه... ما دشمنی که مدن داغون دوشمنه... کردن و چیزا هم... متاسفانه آیه دورونون گفت بله یه پیامک بیات هست آیه بی رسید ب... ب... اگر نا. بره. نا. بره. اگر اجازه بدید من بخونم چون پیامک ها زیاد میشه بعدا من شرمنده میشم یه پیامکم دارید اول بخونم من برای شما که گفتن خیلی بینسافی تا حالا ده تا پیامک فرستادم چرا نمیخونید من, من چه هیزوم تری به شما فروختم اگه جرت دارید این انتقاد منو بخونید من باور کنید اصلا به هیزوم و اینو اصلا کار ندارم و اما روسیه هیچ میمونه برای من این رو شما بدونید پیامک ها زیاد هست و با توجه به موضوع میخونم خوونم نمیدونم پاماکز اون چی بوده؟ اما برام بفرستید پامکز اگر با توجه موضوع بر برای... نگفتن اسم اسم نگفتن شماده تلفونشون هست 918 چهار شماری آخری 37 29 دوست عزیز پیامک بفرستید من هیچ کدوم از شما دوستان رو واقعا نمیشناسم اما با توجه به موضوع حال و هوای برنامه و ریسم برنامه و فضای صحبت انتخاب میکنم پیامک ها رو و بعضی از پیامک ها خونده نشه ببخشید زیزم ندارید دوسیایشون در من دمون شد دوسیایشون در من در من و عرض میکنم خدمت شما این پیامه کنم میزنم آخر سر میکنم موقعی که موسیقی میخواد بیاد چون خیلی دوست دارم که به سالا بخونم سوال کردن اصلا در مورد اگر بیاد در مورد جشن نوروز از چه زمانی بوده و چون میدونم شما گفتید میخوام بار دیگه بفرمایید در مورد این پیامه که دوستان گفتن من فکر کنم که یک شمعی یک شمبه آینده نه یک شمب... آینده درست شبه اول نوروز میشه موکو کنید به اونجا من کاملا گسته در باره میشه. بس منتظر باشی چه نغنده باشی استاد من تحقیق زیادی کردم معنی زن یعنی دانش دانستن و زانستن می آید. که بعدها دانستن شده است زمانیان شاد باشید پیوز باشید درست دانش رو در زبان کردی کردیزان میگن زانا زانی میگن و بعد واژه فرزانه به طرف دانش میرن و برای پیران نباید گفت پیران فرزانه باید برای پیران گفت پیران دانا یا فرهیخته اما تردید نداره که زیشه این در اوستابوده کن یعنی خانه که یعنی ساحب خانه این در پهلوی شد و باید برپاسی شد زن زن خانه در این هیچ تردیدی نیست بدونید که من انا از ریشه ها میگم یعنی به میل خودم درست نمی کنم به همین دلیلی که هنوز هم بار اولم گفتم اکنون هم میگم هر مرد ایرانی که در هر ایخته باشه و از دانش برخودها باشه همه با هم در یک جمله مشترک هستن همه میگن که زن مار است یعنی صحاب خونه زن یعنی صحاب خونه بله گفتم اون برای فرق سید نفسی فکر که زن زندگی حالا شما خیلی زن یعنی زان یعنی دان اما نه مطمئن باشید که یعنی سوار درود بر استاد و درود بر همه شنوندگان فرهیخته اگر بود از کشور از نواده های کاوی آهنگر است و اگر نیای همه کورس ها پس چرا استاد میفرمایند که همه ما فرزندان فریدون هستیم رطف کنید توضیح دهید استاد شاپور از بالاهو. گودرز کشبات پدر کردان و لوران و آزربای جانیانی. و این در منابع قربی اومده کشبه. کشبات اومده بسیار کشبه اومده. یعنی یک دور قبل از گودرز. خود گودرز به صورت گوتیوم اومده. گوتی یا گوتیوم. بعد قوی دقیقت در پهلوی شد گ و در پرس شد کو اینا اشاره به یه نژاده و خب فریدون پل ایرانیانه این فریدون از کابه جدا نیست از که کتاب داستان ایران بیا بیرون شما همه این شوراف رو متوجه مدلمون افسو. دلیل ما ماخوره مشتری. و دستور نشون کردن کردن بکن. یه کاری داری میکنی. خب عکس منو میشتون همینجا من میگم دستتون داد نکنه مونده نباشی کار رو بکن که ما بی صبرانه منتظر هستیم. درود این بیت افسوده است یا احي해. نه استاد رستم بود در سیستان منش کردم. گستم من اول این اصولا افسوزه است اگر میخوید نظر خود فردوسی رو بدونید جهان آفرین تا جهان آفرین سواری روی تو رستن نرامد یعنی من او رو رستن نکردم خودش رستم کنید و پیامت بعدی در مورد آیا سوال کردن که روی بیکرام به پیشگاه استاد جنیدی هجمن و جناب هدایتی سپاسگذارم دفاع کردن از من بسیار دوست داشتنی هدایتی، بسیار دوست داشتن خوبه <تصفيق> این هم میکنم نابلم بیاد بالا پیام هستم از من در لبوست اطه میخواستم آیا نامم ریشه فارسی دارد و سپس اینکه از دوستات خوشم کتاب های خود را در اختیار کتابخانه رودکی قرار دهند تا چاپ بر شود و ما نیز بتوانیم از این جنجین ارزشمند همند شویم بسیار سپاسگذارم شیفته ایان و فرهنگ ایرانی و ایران. نام چی بود آقای پیام. پیام هستم از بندر پیام تعدید نداره ایرانیه. شاد باشه که نام ایرانیه در پلهود بود و بعد و بعد شد با پایغام و به صورت پایام بازمانده همون پیغام هست و پیتام پهلاویه و ایرانیه. من با اون محسوسی روزه که تماس دارم امیدوارم که این بار که کتاب های روستان پهلوان ما به چاب رسید در اختیار اون بذارم که به خط پیل در بیارن و بعد شنیدم که مشهور بودن که شاهنامه رو بخونن شاهنامه ای که من بیراش کردم بخونن و خواهش کردم از ریاست محترمه اون محسسه که دست نگردارن اون چیزی که من خودم در پنیاد نیشه بود میکنم اون رو در اختیار برادران و خواهران عزیز خود رو بده. ک زیاد زیادی اوم استاد استرا در موردین که گفتم میخوان ارتبا را کنم بیان بنیاد تلفن شما رو خواستم تلفن بنیاد رو خواستم من همین عرض میکنم کنمم یا همون تلفن 88، 96، و شش این دورواژ بنیاد نشابور هستش ه ۸ و شش و دورنگار یا فکس هشتاد و هشت نه و دوشش بیست و دو سایت بنیاد هم همون داریم. بفهم نوروز درست میشه نوروز درست میشه اما سایت خود شما هم به نوروز درست میشه همه دوست بونیات بعد عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز که این پرمکار من پیدا کنم که خیلی دوست دارم و من اصلا کیف میکنم این رو این, این کاری رو استادم بی آها سلام من زانیار هستم فرزند کاوه آهنگر هفت ساله از کردستان بله. هاستار مرز ایران برای بله. برنامه شما گوش میدهم آقای جنیدی در ویر یعنی حافظه بله ما میمانی. یعنی در, در حافظه ما میمانی. فدای فرزندان ایران بشم. فدای فرزندان رو کلستان بشم. زانیار یعنی کسی که دانش یارش هست. و امیدوارم که یارتون باشه و مهر میهن در ویر شما باشه و هیچگاه، هیچ وقت به هیچ کس نگین ویرم چوب. یعنی از یادم رفته یعنی اینقدر حافظه و هوش و استعداد و بیز داشته باشی که هموره بتونی پاسو قمر بدی تو فرزند ایران و فرزند کردستان رو میبوسم شاد باشی می میخونم این پرمک سلام و سای جنه دیمان هم کندال میگیم سید دهنام رمزانی از یاسوج روستای بهره انا شاد باشید درود به یاسوج و لرستان خب پیوندهای آشکار بین کورد و لور و لک خب این دیگه آشکار و روشنه و بختیاری خب شادمان شدن که بدونم که در لرستانم هم کندال میگن ده. شما پیامکی که داریون بخون یه پرمیمه که دیگه من بخونم در این فرصت نخواب استفاده کنم سفیز چم خود باز <تصفح> با درود فرماوان استاد بفرماین کابوس به چه منوس؟ کابوس هستم از ور... ورنام خواست نیشون. ور ور ممکن ان بَرن نامخاست باشه. ور نامخاست بله بله. چون ورم که یعنی در ورامین با بختمنی بله. باره وارو. کابوس اشاره به نژاد کاسپا هست که مدت زیادی بر ایران حکومت کردند، مرکز اون قزوین بود و قزوین در هگاه خوش کاسپینه. یعنی شهر کاسپا یه نامی تیره ایرانی بوده. بله. و دوستان پرمک های زیادی اومده و من بیشتر شرمنده میشم به خاطر اینکه این برنامه های قبلی رو ما حتما آماده میکنیم که بخش هایش آماده شده و انشالله اینو در سال آینده حتما در اختیار همه قرار خواهیم داد و همطور آقای دکتر همه نگاه دارم به من میکنن ایک سال دو, دو, ماه. دو ماه حالا پیش از اون دو رو حسابه اون می خواستم سال نده در اختی. حتما این کار رو انجام مییم چ بیشتر از این رمندهیم. خب ۲۲۴ ۸5، ۲ست ۲۴ ۸5 ۲ست و ۲ست 500 ۸۸ دو صفر، ۲۲500۸ و ۸ دو های ما هستش هتر تماس بگیرید دوستان تلفن ها رو باید آماده کنند تنظیم کنند. و در اختیار ما قرار بدن که پخش بکنیم پیامک که ما سی هزار پانسد و, و, هست. هزار پانسد و, و های زیادی از شما اومده اینها رو من در فرصت ها خواهم خاند بفهمید فرم این در این گفتار بودیم که نه مردی بود خیر آشوفتن به زیرن در را گفتن به پرشیدی رویان بپیچید روی هران کس که پرشیده دارد بکنی یعنی به قول امروز که هرکس خودی زن و داره از زن فرزند دیگران نگاه نکن چیز کسان سر به تابید نیست که دشمن شود دوست از بحر چیز نیاید جان آفرین را پسند که جوگند بر بیگناه هم گزند ببود تابه ها در آورد روی جهان شد به هشتی پا دارن گموی. همه دهش چون پرمیان شد به رنگ. هوا گشت برسان و پشت پلنگ. نین پشت پلنگ دو رنگه. و مقصود که آسمان دو عبرهای آسمون داره میگه. که بخشی از آسمون دیده میشه آویه و بخشی از آسمان ابر پشتی که سپید رنگه. درست همونند پشت پلنگ میشه. همه دهشت چون پرمیان شد به رنگ، هواگه هشت و ساونه پشت پلنگ. من اینجا به یاد میارم یه شعر فروخه سیستانیزی که در جوانیم سروده بود که چون پرند نیل بون بر روی پوشد مغزار، پرمیان هفت رنگم در سر آراد گوه پرمیان هفت رنگ یعنی, یعنی،, یعنی، کمان دستم که میگن قوضه و این هفت رنگ هفت رنگی که تو کمان هست میبینید که حدود هزار سال پیش فراخه گفته این دانش این ماست این رنگ, رنگ هایی که تشکی... رنگ... رنگ اصلی رنگ اصلی بله. یعنی هر رنگی را اگر تجدیه کنن این رنگ ها میاد یک فرموری ما بچه بودیم به ما بگفتن میگن اگر قلم پیشتون بنویسید بناس زنق بناس زنق. خب در بناس بیش بنافش نش نیلی آش آبی سه سین سبز بعد زه زرد بعد نون نارنجی نارنجی و قاف قرمز. این هفت رنگی که تشکیل میده نور خورشید رو